وقتی خود را معرفی کردم و اسم پدام را گفتم، پرسید عجب، دختر امیره هزار کوهی مازندرانی هستید، نقاشی هم می کنید؟ این لحن هم او مرا آزرد نمیدانم نزد خودش چه فکر کرد بعدها این حادثه را هزار بار از مد نظر گذراندم. حتما فکر کرد این دختر هباسباز آمده است، ناز و قمزه بفروشد، بعد برود و همه جا بگوید که با فلان کس نقاشی که سرشناس است و مورد احترام همه رجال فهمیده آشنا شده نه به من رو نداد که نداد بلند شدم خدافزی کردم سانیه ای ایستادم اما اون نشان نداد که میخواهد با من دست بدهد فقط از روی نیم نیمخیز شد و من رفتم قیز عجیب به من دست داد هیچ مردی تا آن روز اینطور با من رفتار نکرده بود نمیدانم به چه دلیل در هر صورت آن روز نفهمیدم کینهای از این مرد خشک تربیت در دل گرفتم دماغ مرا سوزاند خاهشمندم توجه کنید رفتار این مرد در زندگی من تأثیر داشت و واقعا اگر, اگر کمی مهربانتر با من رفتار میکرد شاید فرصت پیدا میکردم که ذوق خودم را پرورش دهم وقتی از هانش بیرون آمدم، نزدیک بود هم بگیرد. هر رهای بینیم میلرزید. از همه چیز بیزار شده بودم. همه فکر میکردم که دلیل این طرز رفتار او با من چه بوده است. چیزی دستگیرم نشد. هرچه بخواهم عواطف آن روز خود را برای شما بگویم و تجربیات بعدی خود را داخل آن نکنم نمیشود. باز هم آنچه امروز ادراک میکنم کما بیش به آن عواطف مخلوط می شود مراحل زندگی را نمی شود از هم جدا کرد اگر من دیگر اصراد را نمی دیدم و خاطراتی که از او در سینه من نقش بسته دیگر وجود نداشت آن همین حادثه به این مهمی هم در دل و روح من هیچ مهری نمی گذاشت اما روز فکر کردم و چیزی دستگیرم نشد نتوانستم علال رفتار خود و سلوک او را تحلیل کنم. اما الان که دارم حوادث تقریباً 20 سال پیش را میگویم گویی چنین می میکنم که همان روز به دل من براد شد که این مرد خشک بیاتفه نمیتواند برای من یکسان باشد. در هر صورت تصویری که از او در دل من نقش است تصویر یک مرد خشن تند خودخواهی بود که اصلا ذوق نداشت و هیچ چیز جز خودش را در دنیا نمیپرستید. آخ، ای کاش همین طور بود. تأثیر این ملاقات همیشه در زندگی من باقی ماند. میدانم شما از روی چشمایی که در این پرده به شما نگاه می میکند درباره من قضاوت کنید شما تصویر ناروایی از من در مخیله خودتان ترسیم کرده اید. حق هم دارید. میدانید بابلخی من چیست؟ بدبختی من این است که گاهی خودم هم خود را زن زشت خوی می دانم. خود را گناهکار می و تقصیر مرگ استاد را به گردن خود می اندازم. در صورتی که اگر من آن روز آنقدر بدبخت می زنی بی یار و یاور، زنی بیکس و ویلان، زنی بی و بیبرادر و بی, و, بی و از همه بدتر زنی بی دوست و بی رفیق نمی شدم. اوه من نمیخواهم خاطر شفافی که از شما که شما از استادتان دارید کدر رو دار کنم. نه اگر مردی در دنیا برای من قابل ستایش و احترام است همین اوست استاد شما همه چیز من بوده است و من ابدا نمی شوم که خاطر او در آدیه خیال خودم هم از صافی و شفافی بیفتد. آ محصه خاطر او همه چیز خودم را از دست دادم. می توانستم شوهر داشته باشم. فرزند بپرورانم. چرا شوهر کردم؟ محصه خاطر او. چرا طلاق گرفتم؟ محصه خاطر او. چرا دوست و رفیق ندارم؟ محصه خاطر او. آقای نازم میدانید که اینو این نخستین بار است که من دارم سرگذشت شو، شوم خود را حکایت میکنم. و میدانید یعنی چه که این همه بدبختی در دل کسی قلم بشود و مفری پیدا نکند اگر امشب برای نخستین بار و برای همیشه چیزی میگویم فقط به این قصد است که خودم و او را به شما معرفی کنم حوصله داشته باشید تا مرا نشناسید او را نخواهید شناخت مگر به شما نگفتم شاید من باعث او شدم شاید فریب خوردم شاید او را نمی‌خواستند بکشند. شاید او را فقط تبعید می‌کردند. و اگر من همراه او رفته بودم، شاید او زنده میمان و شاید هزار تا شاید راستش این است که چیزی که میخوام به شما بگویم، چیزی که خودم خوب می‌فهمم و ادراک می‌کنم، اما قوه و استعداد ندارم که صورتی به آن ببخشم و به شکلی درآورم. قابل فهم باشد من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چه میخواهم همیشه قواه متضادی مرا از یک سو به سوی دیگر کشاند و من نتوانستم دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود برانم. و دوختی من هم در همین است همیشه دو دل بودم همیشه با یک پا به طرف سراشوی و پای دیگر به بلندی رفتم و در نتیجه وجود من معلق بوده است الان که دارم آن روز را خاطره آن روز را وقتی از کارگاه او در لالزار بیرون میامدم به یاد میآورم باز هم مردت هستم که آیا آنچه که امروز خیال میکنم آن روز میدانستم یا نه بعدها همیشه در نظرم بود که اگر آن روز او کمی فقط به اندازه که از هر مرد عادی ساخته است با من مهربانی میکرد شاید می میشوید شاید روش دیگری در زندگی من پیش میآمد ببینید گفتم که هیچ چیز در زندگی ندارم اما در نظر مردم از من خوشبختتر کسی در دنیا نیست زنی هستم متمول همه چیز دارم دا من در سفرم بیشتر عمرم را در سیر و سیاحت گذراندم فقط گاهی برای تنظیم امور مادی خود به ایران می آیم. پول دارم. پول. آخ نکبت ببرد این پول مرا. ویلان سرگردانم. هیچ آرامش ندارم. پدر و مادر دارم. آنها در کلبرا مجاور شدند و دیگر است که به آنها هم نام نمی نویسم. مادرم می نویسد که بروم پیش آنها توبه کنم. آخ چه خوشبخت است این کبوتر پیگ. من هیچ جارمش ندارم لانه ای ندارم که با اونجا دل ببندم تمام تفریحات دنیا برای من عذاب است کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمد و ابله در کربلا مجاور می شدم. کاش گدا بودم و موجودی مرا دوست می داشت آن وقت جانم را فدا می کردم. چرا اینطور به من نگاه می‌کنید؟ بله من یک بار تن خود را فدای استاد کردم حق دارید خندهدار است. خودم هم گاهی خنده هم میگیرد اینها را حس میکنم آم به احساس خود هم عقیده و ایمانی ندارم میترسم که احساس و عواطفم حتی درباره خودم هم دروغ باشد همه زنهای این شهر به حال به حال من قبطه میخورند مردها در دست من مثل موم هستند با دو کلمه شیرین میتوانم آنها را فریب بدهم با آنها هرچه میخواهم می توانم بکنم مثل مگس دور من پرپر پر می زنند اما خیال می کنید خوشبختی همین است من هیچ کس را ندارم که با او در و دل کنم من با هیچ کس محرم نیستم همه فریفته و شیفته زیبایی من هستند هنوز هم به من دل می بازند ونی من با هیچ کس دوست نیستم اما آن از زنها آنها همه به من میخندند اما ته دلشان از من بیزارند و همهشان تصور میکنند که من رفیقها و نازدها و شوهرها و فاسقهایشان را با یک لبخند میتوانم از آغوششان بیرون بکشم در صورتی که این جور نیست آقای نازم این جور نیست حال میفهمید که چقدر من در زندگی زجر میکشم به همین دلیل از این تصویر که شما اینجا آورده اید بیزارم برای این که او هم مرا همین جور شناخته بود. من همش دور میزنم و نمیتوانم مطلب را مسلسل بیا بیان کنم. شما باید با من کمی حوصله داشته باشید. بگذارید کمی دقی دنم را خالی کنم.